دروغ گفتن به ضربت لازم ماند که اگر نیز جراحت درست شود نشان بماند چون برادران یوسف که به دروغی موسوم شدند نیز به راست گفتن ایشان اعتماد نماند قال بل سب ولتکم انفسکم امرا، یکی را که عادت بود راستی خطایی رفتن در گزارند از او و گر نام ورشد به قول دروغ دگر راست باور ندارند از او.